عاده در عصب‌های الله تعالی هر شد در اعصاب ال استاد می‌کرده شرایط شفای شده تخنوصی که قاعده اصول ترشی در اعصاب ال مجمولی اشغال نده و مجرد علم ما به این که در رسط حرامی وجود داره این کاری نمی کنه مثل علم ما در شباهات بدویه یا در شباهات غیر محسوره خب مرخون مستاد جواب دادن به جعاق گذشت یه جا تفصیل نداره و خیر اینجا که با شبه محصوله، غیر محصوله یا با شباهات بدویه در برای از فرق میکنه و صورتی هاتش بعد ایشان متعرض شدن به مرحص آخریشون و حاصلش اینه که آیا با قطع نظر از این قائده عقلی که علم اجمالی به اصطلاح منجزه آیا روایاتی دارین که ادله نقلیه داریم که بگه مثلا علم اجمالی منجز نیست یعنی اگر فرض کردیم که عقل امکان بده که در اطراف علم اکمالی اصول ترخیصی جاری بشه آیا از نظر شرعی من این وارد شده یا نه؟ یعنی شوی که خب اولا گفتن که عقل اجازه نمیده حالا بر فرض اجازه داد آیا از نظر شرعی ترخیصی آمده یعنی اصول میگیره چون هر سر مثل مرحوم مجلسی قائل هم که عدله اصول کل کلوشی این حوالت حلال همچنین که شبهه بلگیری میگیره اصلاف علم اجمالی رو میگیره فرقه میکنه بین شبهه بلگیری و اصلاف علم, اجمال. <تصفيق> علم اجمالی رو میگیره معمومه شیخ از این مقدر جواب میدنی که نمیگیره روایات اصول تاریخی، اصلاف علم اجمالی نمیگیره من قبل از این که بحث بشم این توضیح که صابعاً همه از کردم اجمالاً ارزم من که اینجا میام اصول تاریخی شان در علم اجماعی فقط اصول ترخیصی محل کلام نیست قدر متقن بحث اصول ترخیصی است یعنی نه اصول الزامیه محل کلام فهم نمی‌کنه و شاء خواهیم گفت که اصول مطلقاً جایی نمی‌شه چه الزامی چه ترخیصی مثال اصول ترخیصی مثل همین مثالی که گفتم دو تا زرد بودن پاک بودن یه اصل خود اونها رسیده استصحاب طهارت در این باعثه کارا اصول ترخیصی اصول الزامیه که دو تا زر نجس بودن یکی شد بچه زیره باگم بودش پاک شد اما ما بعد مخلوط شده هم تشکیف وقت از اصل الزامی استطحاب نجاست در این با استطحاب نجاست در آمون این یکیش محل کلامه حالا من چون هنگیم اصول فرکیسی چون اینش محل که من رو بنایی میگرد هم نمیشه اصول الزامی هم نمیشه ما هم عقیقی اون هم اصول الزامی میشه، گفتن نمیشه. اصول الزامی پس من که کلمه اصول ترکیسی رو به کار برنه این که در علم ایجوانی بحث وقت تو اصول ترکیسی تو اصول الزامی هم هست اما اصول ترکیسی مسلمه دلالا اصول الزامیشون دلالا نمتعرض میشیم بعد از این توضیح رو من عرصمی کنده در, در خلال بحث ها هستگردن بعد از این بحث ما همین تحبیر خواهد بود این روشن بشه که ما هی اصول ترکیسی میگیم چون اون اطلاق متقنه اصلا این که آیا عدل اعتبار اصلاف علمه مادی رو میگید نه البته این پرانسیس تموم شد اون کلمه اصول تفریم مراد آن از عدل اعتبار اطلاقاته خوب درخش بکنیم نه این که شارع بیاد یه تعبدی بکنه که اگر تو میدانی یکی از دوسراف نجسه تو میتونی انجام ببین اون مرادشون نیست مرادشون تفریم که اگر تعبدی از تو با توضیح داده بچی مراد اون اخلاقی که در ادله اصول فقه پیش آیا این اخلاقات اساس علم اجمالی رو می‌گیره یا نمی‌گیره؟ از این مفهوم مجیش نمی‌گیره. خصوصاً اینکه حلال اینجوری نمی‌دونه، فهموند؟ روشن شد؟ مفهومه استاد می‌کنه عقلاً نمی‌گیره. اصلاً عقلاً نیست. حالا اون وقت اگه عقلاً جایی نمون، هم فائده نداره. حالا اگه گفتون عقلاً امکان داره که اون کفایته. آیا نقلاً واقع شد یا نه؟ مرگومی شیف نفرماید خیر نشده همون اشکال خیلی معروف شیف بیگه بعد ها معروف شد تناقض صدر و زیل اشکال مرگوم شیف تناقض صدر و یعنی اگر گفتیم این انا کلوشین لکه حلا این انا حلا اون انا حلا پس علم ما به این که نجس با این ملاقات کرده دم در انجاما واقع شده چی میشه حتی تعلم نفرمون؟ حتی تعلمان نمه هرامون دینه این اگر تناقضش کلش این حلال بگیره با زیلش تناقض داره زیلش میگه حتی سهلا یعنی اگر ایلو پیدا دیگه اونجا نمیتونیم حکم به حلیت بکنه لذا معروف است بردم شه که روایات به خاطر تناقض صدر و شامل اصاف علم اجمالی نمیشه یعنی بایت معروفی است معروف است به صدر و زیل تناقض صدر و زیل عبارات مختلف صدر و مثلا از علیه استثهام مثلا این دوست هر دو صاحب روزن خب داره اون رو به یقین آخر همه یقین دار کنه حسابه با نزیر پس باید نقضش لا تنقضه یقین به شر چون زیر داره مقتضای سرد و شامل عطاق علمه جمالی میشه اما زیر شامل عطاق علمه جمالی نمیشه چون حتی تعلم داره اون وقت شیخ اشکال معروفیست که چون اصلا مرحوم مجلسی هم اشاره میکنه میگه امام فرموند تا تحرق حرام به اینه پس ما اگر علم اجمال داشتیم به اینه نیست محوشه اجازه که این به اینه تحکیده اینکه اون حرام مشخص داشه یعنی یقینا یعنی و تحکیدن و یقینا یعنی شما بدونین حرام ملاقی نجیس اونجا هست ملاقی بول در اینجا هست یقینا یعنی. مراد تحکیده بر یقینا یعنی. و شما که علم اجمالی هستید، یعنی یقینا یعنی ملاقی شده شبه حرامه. به اینه این مراد از کلمی به اینه, اینه این خلاصه که مرگون و مطرح فرموندن در جواب امثال مرگون مجلسی که روایاته یه تعدیل اصول تکیسی تعدیل دیگه در اصلافه ارمه اجمالی جایی میشه تمثلشون به اطلاع جواب شیخ مناقضه سرگوزهی اگر ناموش کلش این حولت حلاشمانی میشه بالا حتی تعلم نمیسازه این پیمون میشهالله اشکالشه بعد از مرحوم شیخ اشکالاتی و این مبنا پیش آمده اون مبنای تناقض سد و ذه. من برای اینکه مطلب واضح تر بشه به که هست فهرستوار از کتاب مرحوم اصطاد از 82 از همین اصبار میکنی اما که من صاحباً ارز کرده مرحوم اصطاد قاعده داری من اولاً ثانیه سادسه تا سادسه هم میردونم ما شکریه این ارقام می حالا چون این چهار اشکال فرنده بر عبارت مرحوم شیخ من لا اغل اجمالا می خونم تفسیر تفصیل شده. اولا اولا اشکال معروفی است که هم کرده ایشون قبول فرنده. ایشون میگه بعضی از روایات هیچ خطا تعلم نداره. حالا ایشون مثلا همین مثل رفع مالا علمون الناس فی ساعه مالا علمون پس اینا توش حتی تعالی نداره حتی تعالی نداره به اطلاق اینا تفکر میکنه این اصول فلسفی که زید نداره حالا اونا حتی تعالی داره غایت مشمول میشه که آیا شامل علم اجمالی هست یا نه اینا نه من فکر میکنم حالا شاید مراد صوفیای اصول دیگری باشه الا الناس صحت ان مالای علم اون صحه تعالی رو دیگه مالای علم اون صحه تعالی هر چه فکر و رو آدم هست میکنه تا نمیدانه وقتی دانست دیگه رفت نمیشه به هر حال ایشون مثالی ای که زنشون من میخوام مقایدن به عبارتی ایشون نقطه دومی که ایشون فرموندن در صفحه هشتا رو ایشون یه نقطه فرموندن که حالا بعد من توضیحی که میدن شده بشه ایشون میگه حتی تعلمی که آمده این علم ظاهرا ناظر به هم، یعنی بردار اون شک شک شما چی بود؟ که این انابزاته نجیسه این انابزاته نجیسه شک شما این بود حتی تعلم بیاد این شک که برداره شما تو علم اجماعی که این شک که برنده میگی این انا نجیسه میگی جامع نجیسه بس حتی تعلم علمش باز بخوره یعنی علمی که اون شک رو برداشت کلوش این قوله که حالا علمی که شک رو برداشت علم که شرکتون رو برمیذاره چون شرکتون چی بود این انا علم ایجمالتون چیه اهده همه این اهده همه که انا رو برمیذاره ظاهر کلمه حتی تعالیم میگه. میگه خودتون ملاحظه ملازه ترمونی من چون بیست واد کنم سالتن این که کلمه به اینه تأکیر است روشن نیست چون نشون روایت دیگه نیمیان روایت مسعه ابن صدقه کلوشه بله ببخید درقات مسئ ان ص کل و ش وکه حلال بعد نیست اما رووارد ع لاابن صان اینطوره کل این ای فیه حلالون و حرام ف ال که حلالون عددن هرتا تععرفل حرامه منو به عه از تا صرف حرامه منوه ش که این روات کلمه من هم داره این منه یعنی از همین فرد خارجی بدونی که این مثلاغ حرامه و شما نمی به اون مثلاغ حرام عنوان عهدیه این هم اشکال سوان مرموم ارسال اشکال چهارمی که مرموم ارسال فرمیدن این است که اگر این مطلبی که ایشون فرمیدن درست باشه تناقض باشه باید بگیم علم اشمالی در اصلاح منجزه ولو بعضی از افراد از محله اطلاق خارج باشه نتیجه شید میشه دید. چرا؟ چون شما میدین یا انایی که اینجا پیش ماست نجسته یا یک انایی که رفته بردست رفتی هم مثلا دفتی شیم مثلا؟ مصابرت یکیش محل سلاسی که یکیش محل سلانست شما اگه که عنوان عهده ما منجیزه با کنجا ملون به عهده اما داریم فرقه نمی این انام به خصوص معلوم نیست. اون انام هم به خصوص معلوم نیست عنوان عهده ما معلوم باید ملتزم باشیم که حتی اگر از محله اطلاع خارج شد علم اجماعی منجز باشه خارج است. علم اجماعی منجز باشه با اینکه خودش قائل نیست این چهار تا اشکالی که مرحوم میشه، مرحوم استاد و ایده قبل از استاد هم چیکار کرده اشتباه دیگه این اشکالا اومده راجب این بحث ما این مورد صحبت رو کنیم که آیا این رجالیات از علم اجماعی شامل میشن نمی اصلا هم که روایتی که ایشان آوردن در اینجا تاست که ها سید یکی روایت به اصطلاح مساله سبن صدقه کلو شیعه مهو لکه حلال حتی تعرف خرام به اینه فتدعه اون من قبل نفسی یکی این روایت این کافی آورده مرموم کلینی قدس الله نفسی تو باب نواده هم آورده و هم مرموم شیخ توسی م اون تبیی این رو ن یک هم روایت لازمب می تنهاان به تغییر ایشان این تهیه هم ععرضده کافی هم دو جا آورده تویل هم دو جا آورده فریع هم عورده کل روایت مفصل است هست با ضیل آمده بدون ز هم آمده تنها آمده با صدر هم آمده در عد از این مساه فقط تنها آمده کلشغال ستان کلشه بیا حللا رو را اما در خودش کتاب کافی مفصل آمده. یه خدمت حضرت دارم صحبت پنیر شد حضرت دارم خوبه گفتیم که آه این هم توش میته هست حضرت دارم اشبال نداره، پول داد بر بخور بعد خریدم حضرت خوردم گفتیم که آه این پنیر هم توش میته دارم ببطور دیدی خوردم گفتم نه میکام از زبانتان بشن حضرت دارم کلوشه این فیه حلالون و حراف آقوه حلالون حتی تعرف هم نخواه حرامون به این درستان زیلم داره که سری پنیکون، از پنیکونزام بود، از بوسانده میته اون پنیمایشی که از میه شهر از اون چی از اون آخر میه شهر شدن. این رو به اصطلاح از میتر میگرفتن. این بحث هم داشتن که اصلا پنیمای که از میته هست مالا تول آیا یا پاک نجس اجزه اجزا. اول منخواهم از این بحث طهارت است و طهارتشون بحث باشه. اینا اشکالشون بود حجات یعنی فقط تو بازار مدینه دو دود پنیر بود. پنیری که از انفاه میته بود، پنیر ماریه میته بود، پنیر گیده رو صورت سر بود. حازه سنه کل چیزی این فيها حلال و حرام. سه پنیری که وجور هست، تو میتونی بخری و اون حلال روشن شد. حسین روایت عبدالله بن جنان دو, دو سه جور اومده. همین زیل تنها آمده با شرم آمده حالا من شو نمیخواهم وارد بحثم. به لحاظ یعنی لحاظ های مختلف این دو سه روایت. هر دو روایت یعنی روحات عبدالله سلام در روحات مسعری به لحاظ هر دوشون گیر داره. خود مسعری توسید واضحی ندارن یعنی از اهل سنت شواهی بر بساقه اقامه شده اما قدر حیقتر اون واضحه واضح نیست. حالا برا خودم هم گیر دارن چون خیلی هم از قبولش نگردی مگر که این شواهد قبول شده به الا مشکل هم به مسعری سلام مسئله ته به صدقه هست، مسئله زیاد هست، چند که روشنی ندارن. یکی جمه همین صدقه هست، مثلا این یک مشکلی که راجع به مسئله. یه روایت که عبدالله بن سلام که واقعا ما مشکل داریم. چون استاد رضان تعالی روی مقناه حجیت تعبولی اینی از فواره رو بزن. چون مثلا در کتاب فقیه اینجور آمده. حسن محبوب عن عبدالله هم مثل عن عبدالله سلام ابی عبدالله خب این سنه زده ها خوب ریمان شیر نداری که ازر محوو جلوغت خیر سزه هم بوشون خوب لیکن در خود کتاب کافی انا حسن محوو انا ابن سنا انا عبدالله ابن سلیمان همین روزه میشه. این عبدالله ابن سلیمان رو بیا میشن این که بخشنه ایکی از فوارق و حجیت تعبدی استاد ملتجم, ملتجم بزن خیر استاد ملتجم بگه این سنه سهی امر سرده اما بیره کسایی که دنبال اوجیه تعبودی هست گرد این سنت سری لیکن ما ها که دنبال موسوقیم موسوق پیدا نمی کنیم احتمال بگیم نسخ کتاب حسن محروف مختلف بوده توی کش عبدالران سلیمان بوده کلی نه همه تر شوکی نیست که توی کشم نبوده که صدور نه هم کرده مثلا یکیه البته متن اجمالا یکیه توی برداشت کلوشه این فیهه حلا روزن تو بعدش از کل روشه. این من حلاله داره بعضی هست منهاست یعنی خود مرز هم کاملا واضح بین نسخ اختلاف داره فیش با منهش جا شده هم سندش گیر داره از کلم ظاهر بعضی هست صحیحه این که حوش. اما ظاهر کل این صحیح نیست مثلا کاملا یکیه یعنی واضح یکی کاملا نه که با اون ریزه کاری لذا این دو تا روایت که روایت معروفی هستند در مانه نفی انصافا هر دوشون گیر دارن به لحاظ سندی هم اولی گیر داره هم دومی گیر داره خیلی صاف نیست این یک نفیه اول نفیه دوم روایت اول سلیم ابن سنان رو میگن در اینکه این روایت محمد ابن سنان مفادشم چیه عبدالله ابن سنان دارد این هم اختلافیست. این کلوشه انفیه فیه حلال و رحرام ببینید فیه سای و سای احتمال داده مراد اختلاط اصلا مثلا یک گندوم قضایی شما آوردن یعنی آین یک شفتیه با قول موزی ها اجازش نیده امهای یا دوزی کرده تو امهای دوزی هست گندم احتمال این مراده از این آرده گندوم دوزی باشید ایشون گفت کلوشه انفیه حلال و رحرام مخلوط این یک احتمال یک احتمالی که اصحار ما غالبا قبول کردن این احتمال صادق سادسار ظاهر سادسار شما آنون باب اختلاف راید یک احتمالی که اصحار ما او بردن کلوشه این فیه هلال و حرام اینه احتمال یعنی کلوشه این فیه احتمال حلیت و حرمت این دادن به دا اساس ففل در شبابه برگید مثلا نمیدونیم سیگاه کشیدن حلال یا حلال نیست برسه نمی گفتن خلوشه این فیه هلال و هرام فیه یعنی درش دو تا احتماله حلیت و هرمه فهمه لکه هلال این حلاله هلاله این هم اون احتمالیستی در کتب اصولی ما آمده البته صاحب و صاحب مخالبه با این مسئله اخباری ها کتب از اخباری ها تحریمی جایی نمیدونه غیر از این جابیه بفتن جابیه هم دارد سال اشاره احتمال سوم احتمال که من میدن و هم دادن و اون که کلوشه این فیه حلال و حرام یعنی هر چیزی که داره دو فرده یک فرده حلال، یک فرده حرام. مثل اون پنیر دو جور پنیر تو بازاره هست پنیر با پنیمایه میکه با پنیمایه سریع این فیهه نه که در جور احتماله به فرده دو فرده یک فردش حرام یک فردش خیر حرام پس شما بگو اون حرام هست حلال هست حتی سهرفت حرام منو به اینه تا بدونی که اون پنیره با حرام هست. و الا تو میتونی اصاصل هل جاری بگویی پس مراد از این نه این که اختلاف باشه کما فرد وسائل نه این که مراد احتمال باشه کما علیه الاسها مراد وجود باشه و اما یه در مقام استظهار کراراً در وحثی صادق عرض کردیم حالا تو مقام استزهار طبق زواهر لفظی قاعده چیه؟ قاعده کلی شدم چون به درد شما میخورم قاعده استظهار چیه؟ قاعده استظهار اینه هر لفظی که در لسان دلیل احض میشه ظاهر در فعلیت هر لفظی که در لسان دلیل احض میشه ظاهر در فعلیت مگر دلیل وحش پس كل چیزی انتی نه که فیه احتمالان چون احتمال ابهیت میشود ظاهره اینه که هر چیزی که الان بالفعل دو تا فرض داره فرد حرام و فرد حلال اونی که اصولی میشناس تو که نه هر چیزی دو احتمال هست احتمال حلیت قروشن شد با احتمال حرمت این با ظاهر نفس نمی شیه حلال و حرام قاضی کلیست خیلی جواب دردین یعنی به توش حلال و حرام اون چیزی که به فل توش حلال و حرام که من ارز کردم شبهات موضوعیه که در کارش دو فرد داره یک فرد حلال یک فرد حرام امام میفرمه است رو فرد حلال است تا یقین کنیم. ها هر کساب و سال هم میسازه لیکن این با شیع نمیسازه چون شیع سالس میشه اگر مختلف شد یعنی نستش پنیر پنیر مایه مثلا با اون میسازه با مخلوط بگیرم دیگه بگیر. ظاهرش این پنیر خارجی این پنیر یا یعنی یک فرد میتدانی یک فرد حلال داریم. اما می این فرد حلال اما این شیعه این هر گفت که پاید جواسال گفته این ه حلال کردنش در اون وقت ها اون که حلال و نظام ساقصای چی گفته بود اگه مختل بشه اداء خمسش میکنه بعد بعده خمس انجام بده درک کردی اون مجبور یک بشه اضافه بکنه سال درستش میکنه خب مجبور نیست میشه چیزی اضافه خودش ارضی میکنه پس استظهار حساب و یک دنیمه میخواد چون اگر به مختلف توش باشه بالاخره یه حکم تو مختل دیگه حلال نظام ایشو برداشه گفته مراد این است که بعد از از آقومست مطارن. بعد از آقومست دریم بخواد. به نظر ما که به ذهن ما میاد آن همینه. هر شیعی که شما ببینید در خارج آمین مثلا این گوشی که هست دو جوره. گوشه میتر هم هست. خب شما بگیم گوشه مذکر تا حتی ایست بازه این که این میتر این رو از چه هسته وجه صابق میکنیم؟ همین روایت صابق میکنیم؟ ظاهر شیم کلش کلوشین فیه حلال این در فیل روزه حلال یکی حلال نه یکی یختم علاقه یه هلی و الهرمه ولذا هم خود روایت هم موردش پنیره میگه از پنیر سوال گردن امام آخر اون رو باید در روایت کلی مفسر تو آخرش آمده گم نه آمام ها غیر از دیگری هم که پ امام فرمودن کل دوشه ای انفیه حلال و حرام فا هولکه حلال هست تا تعرفت حرام منو در اینه فضلت او منخبر من که اون رواس مسعده تو اونجا هستی اینجا شده نباش این راشه در روایت البته بنابرای این دقت دفت بکنید ما در بحثی سابق هم چند دفعه عرض کردیم ما روایتی به نام حسات الهل اگر این مرادشون باشه در خواست و حکمی کلیه ندارید این به سیگار س اشکال صاحب رضا ای مولا محمد همین این مولا که این روایت در شباز موضوعی هست. حق با اون هست اصالت رو که شما تحریف جدود بله قیل قاعده اصالت که شما شکر کردی بنابراین حیلیتش بگیده قاعده هر چیزی در واقع علانه این گفتن این اصالت رو با این نمیشه به درد سیگار نمیخوره. و یک نسخه هم داره. هر کدوم نسخه خیلی هر کدوم باشه همون نکته که ما گفتم. سال و سال گفته ها با متخصصون به شو فل موضوع یکی به فل خب حق با ما اگر در سیگار شک کردیم این به نازل سیگار نیست. دقیق کردیم ما در اصالت الهی یک روایتی داشته باشید که هر جامعه نهر و شبه و کلیه این, این روایت این راکه به روایت افر دوم گفت فیلم آیتون دوم روایت معروفی کلوشه این هوه لکه حلال و محرام روایت مسعده که اصلا سرم شال صندوقی هم داره مسعده مشکل بزرگ روایت مسعده چی دیگه ایس دو مثلا هر سرم در روایت مسعده سه تا مثال امام تذکر فرمیدان که صبح و و اندک و مثلا اندک خود سه تا مثال امام زده برای اساس هیچ کدومش به عذاب اله نمیخوره اساساً از این سه هیچ کدومش به عذاب اله لذا یک مشکل از آیی روز بعد خیلی روان راه رو یک مشکل از آرا اصولاً بهینه علماء بزرگان کی نمی‌شکاریش می‌کنی؟ چون صرف اشتراکی تو تو با قاعده ید میره خرید. چرا بیاید از هندن؟ شما لواط از بازار خریدین. چرا طرف هندی؟ لواطی یک به استفاده این جزو اصولاً مقرضه. در مساله اصلی بنای اگر اصل جاری شد به اصل خیر نوبت نمیرسه اگر ما به قاعده گفتی اسا... ای گفتیم منتاغاس که اساطیل هتون که اساطه میخواستونه اندک و الله که اساس عدم رضا اساس لا اله بدون رضا خب اساس عدم رضا چه چیزی با جریان اساس عدم رضا موقع بر اندک خور عبد این مقدمه اینم با تا مثال در این رواقه مبارکه آمده هیچ کلونش بر اصافه لحظه این اشکال بسیار محروض و پر سرسده. واقعا بزرگان ما هنگی که مرموم آزیاره توجیه کرده یکی که ادهی از کسا دیگه جمع تیگه از کردیم در اوصفال سوال وسائل و در تحضیبال اصول این جمع شده که این مراد اصافه لحظه نیست این مراد این است که اگر انسان یه چیزی رو به قاعده شرعی گرفت بعد شک کرد برو اون بنو اخواز نکن این اساسیه مراد این میشه مثلا رفت به قاضی سوق مسل به قاضی یلد مسلم چیزی رو با از بازار خرید از شخص خرید که قاضی یلد بود بعد اگه شک کرد که این مع درست بود یا نه این خریدار من درست بود یا اصلا من به همون یلد مسلم اکتفا بکنه حالا اگه بخوام من تعلیمی دیگه بکنم چون در باب استثاب ایشالا خواهد من در کفاید تنگیر دوم بردیم نیابده خلاصه ای بحث اینه خوب دقیقه بکنیم لا تنقذل یقینه به شرک که در باب استصحاب هست مراد از یقین یقین نیست یقین به خصوص مراد حجت شرعی هرچی شما حجت شرعی داشتین بعد شرک کردیم استثاب بکنیم لا تنقذل یقین مرد از یقین حجت شری است نه یارین سبزی یارین. نمونه شمارشیم با و بازی سوگو مزرعه از یخ خریدی، بعد شک و شوهری بر بیشتر. همه راسته تاب میخند. این وقتی که خیلی درست نیامده است. ممکن روایت دیگر میشود این آقایون اگر ما در دست مرغوار خورن، اینو شی نمیشوم یخون در. میگو فردا این این جور بخوریم کل لوشی این هوبلک. این هوبلک رو جمله صفات برای شی امیره به اصلا هم رو هر چیزی که مال توست سر. حلال اون حساسر اینجوری بخونیم نه کل کلوشه این هوه لکه حلال مازالا اونجوری بخونیم اینا دیگه روایت باید اینجوری کل کلوشه این هوه بله لکه حلال اون خب این صافت هم قناعت عشقری بیه اگر من میگفتیم تو ده ذهن افضایی شد چیز معنی غریبی که. بقیه آزی ها جواب دیگه من حالا وارد این بحثش نمیشم این بحثش جواب خودش ما علا تقبیرش خود ما می جواب دیگه میگم می این خیلی معرکت الارای شده که این روایت مغارکه رو با این مثال ها چجوری تطریق رو کنه. انصافش که اون قراعت خیلی مشکل ظاهر هم اساس الهنده و به اون روایات نیست و این امثلا نکته دیگه داره که حالا من این در محل خود سوزیش عرض میکنم ظاهر این روایت مبارکه اولا مثال هم که قدران در صبات موضوعی است، اینکه جای شک نداره بعدا امام فرمون وله اشعا کلها علا داره حتی یستبین لکه خیل رو او تبون بر بیانه بیانه و اصطلاحا در روایات به کار نمی برن در موضوعات خارجی به کار با صد روایت و زی روایت و مثال ها همینطور که مرحوم صاحب و لند مرحوم اثرشان علامه محمدالدین استرآبادی اصرار استراب دارند این که این عبارات در شواهد حکمی کلیه نیست اختصاصی شواهد موضوعیه داره در مورد روایت ولی و رضات ما سالغا چند باره کردم. این اسافل حدی که معروف شده که اگر ما به نحو شری به حکم اصلا مثلا سیگار کشیدن حلال یا نه میگن به روایاتش برگردید روایت ندارید ما روایتی که در اصلا با قطع نزال از سندش روایتی با عنوان اصلا صلحل نبیدیم که دلاغت بکنه بر اینکه در موارد شباهات بدویه مثلا در هم بین حرمت و جواز باشه مثلا این حرام نیست و حلاله کلوش این لکه حلال خوبه این ایک مطلب. مطلب دیگه که باز بقیه مطلب روشن میشه سبون ارز کلن شدارن گاهی اوقات ما روایاتی که داریم اخصال اهل سنه دارم مثلا که خیلی پاپی شده که مثلا اهل بیت علیه السلام مطالبی رو که اینا ثابت نیست مثلا فرصه همین مطلب سوال های سؤال. این که امام فران کلو لکه حلال حتی تعرف الحرام بینه جزو سنان پیغمبر مثلا آیا کسی اینا از پیغمبر نقل کرده یا کل تا این چون روشن شد که کل این لکه حلال در ثبات موضوعیت کل این انفیه حلال و حرام هم در ثبات موضوعیت و مراد دارای دو فرد یک فرد حرام یک فرد حلال اون کل این لکه حلال نمیخواد دارای دو فرد باشه او اونم همین ثمره نتیجهش اما این که شک کنه اون حلال سوال مثلا سومی که در اینجا هست که بازوش خوب ترجم بشه آیا این روایات مبارکه کلماتیست که ایمه علیه وسلم امام صادق امام الله از رسول الله نقل رو فرنده؟ یا خودشون تشریف فرمده این از تشریف خودشون نه آیا که این مطلبی از پیغمبر نه شده من عرض کردم مطلبی که در اول بود از قاعده طریقی بود قاعده یعنی یعنی چیزی فی نفسه به عنوان حلاله واقعا هم حلال الهی حلاله این اصل واقعا قاضیه. از اساس اله. اساس هر که شک بکنیم اله. و چند بار گفتم میگه فقط من این اصطلاح بنده‌ام کسی بیکار نبره یعنی حالا این مبلدای منحصر به خود منه. و اصطلاح ما بحثی با آیون نداریم. خیلی یاد نشدن قاعده مرادشون اساس اله هست خیلی یاد نشدن اساس اله موضوع بنده هر که اگر این کارو بکنیم کار خوبیه. قائده هل باقید از اصالتال هل بگیداره قائده هل یعنی هر چیزی که خدا خرک کرده واقعاً حلاله واقعاً نظاهره تا این تو خداوند تحریم شده یه تحریم نظره واقعاً حلاله دوباره اصالتال هل مثل سیوار کشیدن که شکل میکنیم آیا حلاله یا نه بگیم در مورد شک شکم خدا فرموده است که حلاله این اصالتال هل قاعده هیل میگنه از آیاتن در میاد خلق رفا مابل عرض جنیان لکن از او قاعده هیل قاعده هیل یک مخلطه اصالتاله هیل مخلط دیگریه بگرد پرمونی ما الان صحبتم در اصالتاله هیل در شبه ها صحبتمی هست که مزنوی در موضوعی هست سوال دیگری که هست آیا این مطلب رو امام از پیغمبر نهارو پرمونیدن و کجا این مطلب از شده؟ از خودم که البته طبق عوائد ما عیمه علیه مسلام سنن پیغمبر رو نقل میفرمیدن ولو اهل سنت نقل نکرده. این ما داریم جز عوائد ما یعنی این یه چیزی نیست یه موردی پیدا نکردیم نقلیز رو ما لازم بیاریم این طبق قائده است. این جای بحث نیست این شبهه این احتمال رو من عرض میفرم که آدوش فکر بکنن یه احتمال هم من میگم اساسا این جز بیانه کلامی از رسول الله و تعبدی نباشه اصلا شاید مراد ما از این کلامی کلام و باشه نه تعبدی بحث تعبد مطمئن نیست بحثی که مطرحه بحث و اغلاییه اولا ما رواییت رو به شبه موضوعیه داریم به در میزن حتی تعرف حرام این تعریف از کردن به معنی مرتبه تنجز وقتی ما این به هفت پیدا کنیم تنجز میشه تنجزه کردیم دو مرتبه داره سغرا و کبرا در کبرا هم آقایون بناشونه که شاره تصرف نکرده و تصرف هم نیمتونه بکنه ما گفتیم در کبرا تصرف میکنه مثلا اگر از خیاس این پیدا شد حجت نیست اما در سغرا مصطفیقان علیه که شعره تصرف نمیکنه؟ در صغراح مثلا شونه دیم مایه خم یا نه در حقیقت امام مخال اینه بفرمه هر چی دیگه مقابل قرار گره اگر صورت حرام در ذهنت نهیده حلاله کلاشه این اگر زلیم ما به شبهات موضوعیه خوب دهده در ده چون اگر به حکمیه شو شبهه تعبد قوی میشه اما زلیم به موضوعیه چون تشکت موضوع در آه میکرد دسته عبد به دسته خب دقیق دو فرمید؟ موضوع؟ این موزر موزر نه حکر شارعه اما شما اعراض نکردی شما این مایه نمیدونی خقره نه اقناعی نیست یا جعر از خم اجتناب بکنی دقت بکنی جعل شرعی گفته از, گفته از شما که اعراض آب نه من شارعه میگم افر میگه ارف میگه تو نه میخواد شارعه دوگه شارعه در کجا در حکم کلوی مثل سیگار. اون دو روز خب دقت کنید اگر ما روایت رو زدیم به موضوع باشن شد این در حقیقت تنجب حکم به لحاظ سخرا تنجب حکم. الهازه سوگراچی و لهازه کورا دارن مزاره انتقال در زنی. این مایه جلو شماست درست شد این مایه چلوش شماست اخرات این خبره میگه نه گناه می‌دونه. میگن نه چون پاسخ کن. چون شاریبا بیشتر علی خبر می‌کنه اون دقتی کم سعیدی هست از این دیگه تعبد نمیشه فقط شک اعمالی مسلما که رکایه دیگه امر رو اعمالی گذاشته. خب دقت اون امرو اغلالی تنجز به بحثن سغرا حاقه احرازه احراز نکنید دست بازه اگر شد شبه موضوعی خوب دقت بگنیم میشه تنجز به حثن سغرا اصلا در تنجز به حثن سغرا اصلا ای نگه این نسان خیلی قیل متعارف بشه وستواتی بشه و ایلا شاره تفرام نمیده شن شاره نیست بگیم این بوده این کمره این خونه شن بشه. یه خونی شما توی این مایه قرمه دیشک یه خون یا میگه تعلم انه او درد میگه نه بخواه پاکه حلاب این حلاب ببین حتی تعرف انه او حرامون درینه یعنی تو تا مادام احراز نکردی این هر فرد حرامیه تو میتونی انجام بگیر لذا ما دنبال این نماشی چی رو توی پیغمبر تداریشه ما توی احراب و حلابی رو کردیم دن پنبال امام یک امر اوقلالی رو خرمد. اون وقت وط این تصور کلمه به یه معنای لافی پیدا میکنه این آ نمیشه که ناکینش یه امام اما انسان شام چون نگدان از بخواد، ذهن خود خول کرده با شاید دو خود هده تا تصور رو در کلاس امام نه چون ما مصللا میدونستن یه دست ممسئله رو شارایکی که احتیاط کرد که با انواز و جمعما و فرروجی رو امام میفرماشد در اون جایی که احتیاج کرده اونجا به اینه لازم نیست چون اجبار نباشه این میگه در حالی که گفتن که فلان زن مثلا احتمالا خواهر رضایی بشه منگه نگیوشن بلبل کنه و از این ناوافته که من رضاده چون در انه مال خار الامرو الامر فی پرش چون من هلهلا قبل خب, خب اخ این میفه میشه حتی تعریف الحرام یعنی اونجایی که در حرام اینیت شرده نه مثل اون شباهات سلاسه که احتیار مثلا این شناس خون خون که داردن این خون احتیار بکنی شناس بول شناس خم شما نمی بریم مایه خم را هست دانا خب این پاک حلال چور باین مایه حلاله چرا؟ چون تو زهن شما نفسی نه صورت نهده از خم منجرد احتماله بعده اگر احتمال دادید خواهر رزایی اینجا بینه نمیخواهد اون خواهر در بابه نکاح اتیار مطلوبه حتی تاریخ اله حرام بینه یعنی اونجایی که حرام بینه مطلوبه تا به حرام بینه نرسیدید حلاده وحی اگر این معنا شد این روشن تو این دیگه تعبول نیست پس ما یواشاش برداریم به کلمه استاد چون بعد یه توضیح هم برد می کنه پس استاد اول بحث فرمونن اگر عقل گفت اجتناب از اطلاف علم اشمالی بکنیم آنیا ببینیم عدله تعبط شاملش می شی آنه طبق این تصور اصلا این بحث بیگه موضوع که بحث تعبط بد رفید صحبت به تعبط نینایت چون این روایات نازل به همون بنای اغلایی میدونی می این قصر نه خب قصر نیست رو میتونی تصرف مکنیم بگه اینکه حالا یک نقطه دیگه باشه سابقه قصر شد میدونی حرامه میتونی این پنیر حرامه نمی‌دونم، نمیدونم نمیدونی میتونی مصرح رو کنیم میدونی خمره حتی تعلیم بله از این جه به اینه لازم نیست مثل موارد احتیاط اگر به این هر نروز بکن پس بنابراین تا اینجا سه تا نکته و نکته نهایی را انشاءالا فرده عرض میکنیم و توضیح نهایی میخوادیم نقطه به اشتاد کلمان ساکیفای و استاد واضح فرده عرض میکنیم و یه توضیح نهایی هم راجع به این حدیث را و محمد الله علی محمد